حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر علا کبادارت چون بلدی بخندی با چشم دل به با ارش دل ببندیم اجوا که دل به حیچیده توی دنیا از وجه موج شادی تا پر دو پس وارد بش با چه قلب سبز دنیا از وجه موج شادی تا پر دو پس فردا. سلام علیکم حال وقتی تو تر من فرشید من و رادیو و شنبه هفده آذر ماه ژانویس خب خوبی این خوشی این سلامت این چه خبره امروز دیگه میخوایم بعد از دو هفته این پرونده مدرنیسم و مدرنیتر رو ببندیم بره ها والا چیزی که تو الان دستگیرمون شد این بود که مدرنیسم خیلی جا خوب بوده برای ایرانی ها بعضی اینجام البته چندان تعریفی نداشت و روز بالا قوز بوده امروز می در مورد رفاه و آسایشی صحبت کنیم که مدرنیسم برامون برمقون آورد بالاخره بعد پذیرفت دیگه که انجام خیلی کارا نسبت به مثلا 100 سال پیش ساده تر شده پس اجازه بدین یک سلامی بکنیم خدمت همه اونایی که با ابتکارات و اکتشافات و اختراعات خودشون باعث شدن که ما روزانه حداقل هزار کالری کمتر بسوزونیم بدون تقلا و زحمت کارامون انجام بدیم و رفاه رو به معنی واقعی کلمه اون به زندگی ما آوردن دمشون گرم پس سامی آتیش کم بریم امروز روز آخر بعد این دفتر قطور مدرنیسم رو ببندیم بره بیکارشا اخ فاشی خوش حالتون در سرما خونکی، پدر ما اینجا در اومده بابا با الان پاراگوئه 31 درجه سرمد شدم بابام دیگه در میاد نمیشه کار کنی خوش با حالتون ای کاش منم میتونستم برف بازی کنم بروونه با برف که ما اینجا برف نداریم تهران ایران برف اومده اینجا هنوز برفین فقط الانج سرما سرما حالا کی ازن تا از تیلیک تیلیک زر لرزیدن به جای رزیده کجا خوش به حالتون داره آقه سرما والا به خدا خیلی متشکرم. شنونده پاراگوهی نداشتیم الحمدلله پیدا کردیم آه. دمت کرد عرب کن به جای ما امروز همونطوری که دیروز دیروزم خدمتتون گفتیم ابرها جمع شدن سمت استان خراسان و شمال شرق کشورم سهم خودش رو از برف گرفت و سفید پوش شد مبارک باشه و الان دیگه هوا توی بیشتر مناطق صاف شده دیگه تا آخر هفته هوای صاف داریم و زمین برفی و یخ زده و سرسر بازی و کلی سوز و سرما دیگه خلاصه خیلی باید مراقب خودتون باشین مخصوصاً آزربایی های عزیز که امشب قراره دیگه منفی چارده در پونزه درجه رو پر کنن اوه اوه امیدواریم دلاتون گرم باشه بسی من او و گز لریم سادی علیم ده گل لریم سادی علیم ده گل لریم گل نییمیم به الان همه منو گیر کردی دو کردم ببین تو اصل تکنولوژی کلن کرش کردی خوشحال شدم یعنی دشمن خوشحال شدی دشمن خودمم هم. الهی همیشه گیر کنی الهی همیشه صدا مو پخش نمی کنی الهی کرش کنی از اول تا آخر برنامه الهی کل موزیکات بره اصلا پاک بشه خیلی حال داد کرش کنی پاک بشه شب شب بخی بله ما دیروز کلن اینجا قطع شد همه چیمون خوشحالی کردن یعنی ملت کلن رد دادن و عجیبه یعنی من عجیب واقعا بعضی ها عجیبه من هیچی دیگه نمیتونم دوستان دیروز هم تو برنامه اشاره کردیم که رئیس پلیس فتو از مدیر تلگرام خواسته که سرورش رو وردار ببرد تو ایران تا خیال الان راحت از بابت این اپلیکیشن هم خیلی دل پوری از تلگرام داره ایشون مدیر تلگرام به بهانه اینه که ایران تحریم است نمیتواند سرور رو به داخل بیاره و چرا دسترسی دادی و چرا خودتو به پهنا باند جمهوری اسلامی تمیل می تو رو خدا می بینی؟ اتفقا همین امروز خبرزاری ایران یه گزارش جالب داده بودن از آبداچه شرکتی تو تهران که این دوست س یه صفحه اینستاگرام داره که توش عکسای زندگی روزمررش میذاره خیلی هم خوب می نویس روزمرردگی هاو چند هزار نفرم فالوش میکنن دنبالش میکنن. فکر کنم عزیزانی مثل این آقا پلیس عصبانی از این جور محبوبیت ها او را به غیرقابل کنترلی که کاربر ایرانی به دست میارن و برقرار میکنن خیلی دلشون خونه. اینه که ما از همین الان به کاربرون تلگرام، آماده باش اعلام می‌کنیم که آماده باشن و برن فیلتر شکن خوب پیدا کنن چون دیگه ببینید تا یکی دو ماه قبل از انتخابات مجلس خبرگان توی اسفند فاته تلگرام خونده میشه از ما گفتم بود این خط این نشون فرشید خانه منافی ای جانب. گفتی جد بزرگ بارمونو بیاریم جد بزرگ بارمونو بیاریم بابا بله. الان سه شبه دارم خواب روح میبینم بابا تو رو قرآن ول کن دیگه آخه چیکار داری ببینی اونا چیکار میکنن چه ریاکشنی دارن بابا جاشون راحت گرفتن خوابیدن دیگه هی این تنشونو داری تو قبر می لرزونی بابا ولشون کن دیگه من هر شب دارم به قرآن کابوس می بینم امیروسین هستم از لندن <تصفيق> <تصفيق> امیروسین یعنی تو از جد بزرگ خواهدت هم می ترسی؟ نگو اینجوری دیگه می ناراحت میشه یه وقت یه وقت اگه اومد جی قداد را رو روح رو نکنی اما اساشه می کن تو حلقت جده بزرگ اومد خیلی محترمانه آقا جون ساداشون میکنی بشه هم گفتیم بیان که این مدرنیسم رو ببینن نه نگفتیم بیان تو به ترسی که oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. دوستان آقایون خانم ها دختر خانم ها آقا پسرها دقت کنین چه نشسته اید آقا دارن لباشمونم هم از همون میگیرن ای. الان خبر اومده ارمنستان داره نون لواش رو به عنوان میراث فرهنگی خودش ثبت میکنه جلال خالق، البته مدیر مربوطه در سازمان میراث فرهنگی، توضیحاتی داره برای ماجرا گوش کنی؟ ارمنستان فرهنگ تهیه و تدوین نون سنتی لواش خودش رو ثبت کرده. ببین اون چیزی که بین پرونده ما و بین پرونده پرونده مشترک ما ما و چهار کشور دیگه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قزاقستان مشترک با ارمنستان فقط اشتراک لفظه یعنی اونها یک گونه ای از لباش دارن ما هم یک گونه های دیگه ای داریم. بله ما این حرفا حالیمون نمیشه. الان هواپیما روسیه نمیدونم نم نوکش میره تو هوای ترکیه، ترکیه فردی میگیره میزننتش. بعد ما نون لواشمون همچون بدیم بره. اه. حالا اون بزن بزنه که بی خیال ولی مسئولین عزیز یعنی الان نون لواش ما رام نمیتونی جون نجات بدی؟ اصلا مسئولین خودمون رو ول کن ما با علاقا من دو کلمه با مسئولین ارمنستان الا حرف دارم ببینید عزیزان ما با هم رفیقیم این همه اشتراکات فرهنگی داریم اصلا آقا ما خواننده داریم ایرانی ارمنی میخونه ولی ما هیچ ازش نمیفهمیم ما ولی خب باش غیر میدید خب شما این رفتار سرشار از حسن نیت و حسن غیر ما رو شما ببینید لواش ما رو به حال خودش بذارید آقا لواش مال ماست اصلا بیا الان سامی برای یه دونه آهنگ از اندی میذاره با هم غیر میدین به شرطی که شما لباش و بیخیال چیا دست شما درد نکنه وزم هر آنام چیدنم کسرد، وزم هر آنام چیدنم کسرد، آف وزم هر آنام چیدنم کسرد، و اما بریم سراغ رادیو پسفرده 945 آخرین برنامه زنده رادیو پسفرده در این هفته و آخرین برنامه با موضوع مدرنیسم بعد از دو هفته میره سراغ رفاه و مدرنیسم همه ی تلاش های مدرنیزه برای حرکت کمتر و دیده شدن بیشتر بیامی شماره شماره 945 بدانید و آگاه باشید که ماشین لوکس همه چی تمامی که سوار می شوید سفر از اینور به اونور کره زمینی که در چند ساعت می روید لباس های خوف و خفنی که برای ترکاندن رقبای لباسی می پوشید و خانه هایی که در آنها با یک بشکند در به اتاق باز و با یک سوت چراقها خاموش می شوند همه از مظاهر مدرنیسم هستند و ما هر کاری کنیم به هر در و دیواری که بزنیم در نهایت از به زور مدرن شدگان ام زاو از غرق شدن در دنیای مدرن دیوانه این روزها به خود بالنده های برای مدرن شدن در آرزوی یک مسقال جنب سوزنده های رادیو پست برد دا دا دا دا دا دا, دا, دا. <تصفيق> این هفته از شما سوال کردیم که بهمون بگید اگه یکی از اجدادتون همین امروز از اون دنیا برگرده بخواد یه هفته باتون زندگی کنه چه چیزایی ممکنه باعث ناراحتی یا تعجبش بشه خیلیاتونم پاسخ ده؟ پرشیده منافی یکی از چیزای مدرن و امروزی این قرصای ویتامینه قدیما میوه میخوردن خوردن قرصای ویتامین میخوره ولی لطفا مواظب باشید اگر قرصتون جوشانه مثل ویتامین سی و کلسیوم و اینا بله. اشتباهاً جوشان کافئین نخورید آه. که بخواید مثل من بیچاره بشید خوابتون نبره کسی هم پیشتون نباشه بهش بگید شب بخیر شب بخیر شب بخیر گفتم شب ته حلقو خیلی قوی و اینا بودا. مطمئنی فقط قرص جوشان کافین دار خوردی؟ چه رنگی بود؟ چک کن؟ آبی نبود؟ یه نگاه کن ببین شاید اشتباهی قرص دیگه هم خورده باشی یا قربونه کار دستخواد ندی. احسان تو فیسبوک گفته وقتی از تفریحات زمان کودکیم واسه داداش کوچیکم میگم یه نگاهی بهم میکنه که انگار ما تو قرون ما قبل وستا میزیستیم بلتازه این که داداش کوچیک است فکر کن بعد هم بخواد واسه بچت تعریف کنی هیچ وقت این کار رو نکنه کلان از بچت میفتیم مصطفی از جویاباد ایمیل داده گفته سلام فرشید خیلی نکرم میخواستم بهت بگم برنامت خیلی به حال حیفه که تموم بشه یه فکری به حال ما قدیمی بکن هیچ کاری نمیشه کرد دیگه ببینید الان 940 و انجامین برنامه هست یعنی چقدر دیگه پنج تا دیگه رو ببینی و سلام موسیقی یدولا ایمیل داده گفته اگه اجداد من بیان خونمون امکان نداره برن دستشویی تو این آپارتمان 60 متری اونا قبلا 60 متر راه می تا کنج حیات برسن به دستشویی بدون سقف قدیم و سپس صداش اگه الان بود همه فهم کمربند انفجاریشون عمل کرد ببین از دست یدولا ببین چی چیزایی مدرنیزم ایرانی یعنی این که روی آهنگ رکینگ بول مایلی سایرس روزه امام حسین بخونی واقعا؟ روی خوندن مگه؟ من نشنیدم اون دلت با من هم اونم چند تو کاره سامی بگی من شنیدم مایلی سایرس دیگه خیلی ستمه دیگه میدونید خودش خدایی یه تنه مثلا چیزه یه تنه لشگر یزیده این مایلی سایرس چیزی میخوام بگم راجبه حالا راجبه رفاه میخوایم صحبت کنیم رفاه و مدرنیسم اه... یکی از مشخصه هاشم ماشین دیگه ماشین و ماشین بازی حالا هر که ماشین بازی از چندین دهه پیش که سرگرمی های بشر دوپا بوده مطابق به قول شاعر اون ماشین بازی کجا و این ماشین بازی که الان هست کجا ان عزیزان مایداری هستن که یه جوری ماشین بازی میکنن انگار دارن مثلا چه میدونم خودکار بیچ به کلکسیونشون اضافه میکنن طرفو میبینی تو پارکینگ خونهش هر دو ماه یه بار مثلا یه ماشینه بهش میگی ببخشید شما تو نمایشگاه ماشین کار میکنی میگن نه من به ماشین علاقه مندم بعد میگی خب مثلا این ماشینی که الان داری BMW سری هفته ه خب قبلی هم که همین بود که حالا عوضش نمیکردی چی میشد میگه ده نه دیگه ده نه دیگه. این موتورش 17 لیتری توربوشارژش 600 سوپاپه دست ساز نیش بدی میره بعد خب بهش میگه خب عزمه الان تو اتوبان های ایران تو میتونیم مگه با همچین ماشینی همچین موتوری از این سرعت ها بری نیشگاز بری دی میگه نه ولی با سه برابر این سرعت میشه رفت تو چش روغبا خلاصه یه همچین پیامده ماشینی هم داره مدر نیست خواستم در جریان باشید باست چه کنم من خودم وقتی با نوجبونهای فامیل میشینم نصف اصطلاحاتی که به کار میبرن رو نمیتونم بفهمم. باور کن بعضی وقتا این خودشونم نصف حرفای هم نمیفهمن سیاد نگران رو نبورن. و ما اگر خواستید با ما در ارتباط باشید پسوردااعت رادیو فردا.com ایمیل ماست دو420 و دو420 7 پ نه پ و پ پ و شماره SMS ماست در فیسبوک گوگل+ اینستاگرام ساund Cloud میتونید ما رو فالو کنید ومون کامنت بذارید. میتونید اپلیکیشن رادیو پسوردار اونهایی که سمارتفون آی اویس دارن یعنی آیفون یا آیپد دارید میتونید دانلود کنید و صدای ما رو اونجا بشنوید به صورت زنده یا دانلود کنید میتونید برامون صدا بفرستید صداتون رو زبط کنید برامون بفرستید و به کانال تلگرامی رادیو پسوردار ها میتونید بپیوندید تلفن‌های ما دو سف چهارصد بیست بیست و دو و چهار صد و سه و صد و از داخل ایران تماس مي‌گيرن دو 420 و بیست و و بسه قیراتونو بزنید زمین دو دقیقه گوشتونو بدیم به من کار دارم آقا خانوم دختر خانوم آقا پسر قدیما اگه مثلا خونت چه میدونم مثلا میدون آزادی بود توی تهران حال در نظر بگیر خونت میدون آزادی بود میخواستی بری کرجو برگردی از شب قبلش برات آش پشت پا میپختن صبحش از زیر قرآن ردت میکردن موقع رفتن پشت سرید کاسه آب میریختن بعد با چند شبانه روز روی اسب و قاطر و شطور و مثل این چیز همین میشستی اگه تو را گرگ نمیخورده دز لختت نمیكرداش تشنکی و گشنگی هلاك نمیشدی بعد یه هفته افتاب سوخته له ولع مالاریا گرفته با نصف وزنی که راهی شده بودی برمی‌گاش خونت الان به برکت مدرنیسم یارو رو میخوره یهو تصمیم میگیره بره چین یهو تصمیم میگیره چه میدونم زوور سوار هواپیما میشه از توی شانگهای داره سوشی میزنه یعنی کاری رو که مارکوپولو یک عمر درگیر انجام دادنش بود الان تو یه نصف روز انجام میشه منطقه با وجود این همه تحول یه چیزی از سفرهای دوران قدیم هنوز تغییر نکرده و به همون شکل مونده و اونم نکنال کردن بعد از سفره آقا وقت میبینی یارو سرجم دو ساعت تو هواپیما نشسته که یه رو بارم ازش پذیرایی کردن بعد میرسه خونه میگه عزیزم. تازه از راه رسیدم خستم. بعد میره دوش گرم میگیره. قدیما میگفتن یکی مثلا دو ساعت یه جا نشسته تو اون مدت دو ساعت هم هم با میوه و چایی و غذا و نوشیدنی ازش پذیرایی شده. اینا فکرشون همه جا میره جز این که طرف خسته شده باشه. به حال سفرهای مدرن هم اینجوری شده دیگه. زود خسته میشن همه. از مزارات روزگار مدرن اینکه انقدر همه چی توند میره جلو، آدم اگه تو دو سال پیش حس می‌کرد جوونه، الان رو که نگاه میکنه لباسی که اون موقع پوشیده بوده، مدن بوده ها، انقدر دموده شده، من احساس می‌کنم مال عهد حجر. امروز یکی از همکلاسی‌های قدیمی عکسو فیسبوکش گذاشته بود، ما دوران دبیرستان اون، منم تگ کرده بود. هر چی خودمو با مغنعه چونه دار و فوکل و شونه های بلند شده به خاطر اپل مانتو نگاه می‌کردم، بیشتر دلم می‌خواست برم شناسنامه‌مو بیارم چه مطمئن شم 40-50 ساله نشدم وقت تو این لحظه بحران هویتی که به سر میبردم بردم بچه همسایی در خونه رو زده میگه خاله ببخشید شما اینترنتتون وصله گفتم میخوایی چیکار گفت مامانم اینترنت خونمونو قطع کرده میگه برای تقویت حافظت خوبه گفتم ولی من که مامانتو نمیفهمم ولی حالا اینترنت میخوایی چیکار گفت هیچی میخواستم مطمئنشم شما اینترنت دارین سوالی برام پیش اومد بیام از شما بپرسم آخه وقت تلف کردنه برم بگردم بین کتابهایی که مامانم چیده تو کتابخونه گفته اینا رو بخون جواب سوالت این توه یعنی آدم میمونه تو کار دنیا که رو دور تون داره میگذره آخه کی ما اینجوری بودیم بچگی ها بری برز غریب سلام چه خبر تازه؟ سلام سلام به هنگی فرشید جان این پرونده مرگ یه حوادار فوتبال تو ورزشگاه تختی که یاد باشده پیش بهش اشاره کردیم بله. دوباره باز شده تو برخی از رسانه ها جالبه یه گزارش از سیما پخ شد در این باره که سازمان ها یا هایی که دخیل بودن در مرگ این هوادار از زیر مسئولیت در میرن یه جورایی بین دو تا صدا گوش بدیم. اولین صدا آقای عباسی سخنگوی اورژانس تهرانه و دومین صدا آقای بهروان رئیس سازمان لیگ فوتباله. متاسفانه تو ورزشگاه تختی این اتفاق نیفتاده و اون روز هم آموانس ما رو راه ندادن. طبعا وقتی آموانس ما داخل باشه خب سرعت خدمت رسانی بیشتر هست دیگه چون بحث اورژانس بحث لحظات هست و سرعت اهمیت حیاتی داره. اینی که مدعی اصلا رامون ندادن یا ما دسترسی برای ما مشکل بود باید این فکره ای که جزوی وضعه فوناس باید قبلا فکرش میکردن بلچ بزن بزنیه فری برز تو هم انتظارت خیلی بالاست توقع داری یکی بیاد مسئولیت مرگ مثلا این هوادار رو قبول کنه من تو سایر اتفاقای مشابه اینطوری شده کسی اومده گفته مثلا من قبول میکنم آره آره اینم یه حرفیه واقعا حتما آخر سر هر شید مقصر خود خدا بیا مرز بوده که رفته بوده ورزشگاه فوتبال تماشا کنه. آره والله. آره، فاشی تا تو مرگ و اینجور حرفا هستیم. حالا اشالا بالا الله بلا دور، یه خبر از مصاحبه امروز منوچهر آذری چهره دوست داشتنی و طنز رادیو تلویزیون با خبر آنلاین بگم که اول رسما اعلام کرده که پرسپولیسیه. خب مبارک. چه چه ای با مرگ و و اینا چه رابطی داشت من من چرا آذری که پرسپولیس که توی بخش دیگه از مصاحبه امروزش تعریف کرده که یه بار م فوت یکی از اغام شرته به یطرها اونجوری که خودش گفته اینجوری گفته مشغول ازاداری بودم که یهو یکی از عقب گرددن رو گرفت و گفت آقای آذری تسلیت تسلیت گفتن بابا گردنمو خود کردی حالا نمیشه از جلو تظاهرت بگی حتما باید رو بشکنیو تظاهرت بدی حتما طرف استقلالی بوده میدونسته من چه زری پرسپولیسی دیگه ولی طرفداران سرخابی جفتشون حتما مسئله در نظر داشته باشن گردن کلا فول دیگه حالا چه از عقب چه از جلو رعایت کنین دیگه مساله خیلی ممنونم از فری فریدرض غریب باد خداحافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه تا هفته آینده خدानگهدار Care's what they see. Care's what they know. Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. با سلام بیسریکوستی سشنب شب را ضمن خوشحالی از خبر آبگیری 700 کیلومتر مربع از دریاوچه ارومیه با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماویم حیادت برادر و دستیار حسن روحانی از مهدی کروبی پس از عمل جراحی زانوی وی و اگه ماون های کارچناسان با این مضمون که روحانی دلش چه فرستاده بره ببینه تو هست چه خبره تا اگه فسفرد خودشم هستی شد بدون وسایل چی برداره امتناع ترکیه از خابرش کردن نیروهایش از شما و و پیشبینی کارچناسان کارشناسان بر که اگه آخرش این اردوغان شاک خابره میانه رو به آتیش نکشید ما اسمونو میذاریم هویج فرنگی و از نظره دونالد ترامپ یکی از علاقمندان به کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در مورد ممنوع شدن ورود مسلمانان به آمریکا و نظر ناظران که او, او اگه ایشون رئیس جمهور بشه و دنیا یه طر بذاره به نام طرح مهار ترامپ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند اینک مشروع خبرها با همکارم بوی, بوی. سلام بنا گزارش گزارشهای رسیده در بعضی نقات زده کشور انگلستان وضعیت قرمز اعلام شد بر اساس همین گزارش ها مدیر اداره وضعیت قرمز کشور به خبرنگار ما گفت یکی از افتخارات کشور ما این است که به این راحتی ها در آن وضعیت قرمز اعلام نمی شود و یفصود مثلا در حال حاضر ما در استان کرمان شویوع جدی بیماری آنفولانزای شاهدیم که در آن بیش از 20 نفر هم فوت کردند اما ما به این راحتی ها وضعیت قرمز اعلام نمی کنیم تا وضعیت روحی مردم به هم نریزد و یک وقت خدایی نکرده بکنه کنند خبری است و یادآور شد اگر ما بخواییم در کشور برای این چیزها وضعیت قرمه اعلام کنیم باید کل سال را در این وضعیت به سر ببریم پایان مشروع اخبار ای بله همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت آشناس سه مشکل برنامه یعنی برادر مشکل از بچه های وزارت هستیم تا مشکل رو بله. ای ول مشکل بفرمایید فرمی. بله من عل... در خدمت. بله. شما حاضر هستم بندال آن. البته در سفر هستم با بخش دنگرک. ای؟ کمی ودیات ساده مناسب نیست. اوه ولی کلا کجا آه. سفر رفته دوباره ی تونال. بله با الله توفیق شدم و علن. در کشور آمریکا مسیر میبرم. اوه ای ول ول رفت دی بله. تو کجا آمریکا کجا؟ <تصفح> نگه ماموریت‌های های هندی دیگه هم انجام میشه فقط با منظور خدمته. بله بله بله. حالا میشه بگی ولی چی رفتی آمریکا ماموریت‌های نصبی؟ نگه مهمور شدیم که از طرف نظام با برادر ترامپ یک ملاقات داشته باشیم چی؟ ب... برادر ترامب؟ بله بله همین دونالد ترامپ منظور ته داره برای رئیس جمهور شدن تلاش میکنه بله بله بله بله برادر ترامپ. <تصفح> خب بله چی شده؟ بس... مشکل این بفهمه تو از ایران رفتی اونجا میده می آویجو نکنن اه... نه دیگه ام. ما بالاخره در وزارت متوجه شدیم که یک اشتراکاتی بین ما و ای؟ وجود داره دیگه اشتراکات بینی شما و آقای ترام بیخیالا چی تو مگه چی شد؟ آقای ایشان فرمودن بودن که اینترنت رو باید کلن جام کرد تا کدکان نتالن از اون استفاده کنن که جمله خیلی با سیاستهای ما در کشور و نظام عزیز زمان تطبیق داره دیگه واقعا یعنی همچه حرفی زدی؟ اگه اصلا میشه اینترنت رو کلن جمع کنیم بله خب بنده هم قبول دارم این کار سختیه به همین دلیل هم هست که بنده آمدم یک قرارداد دو جانبه با برادر کرام امضا بکنیم و امدالله دست دست همین ولی یه اینترنت رو از کار بندازیم دیگر. عجب دیگه قراره چی کار بکنید دیگه مست... از اونجا که ما سالها سابقه مقابله و برخورد با فرقه های زاله رو در داریم. از ما شده که در زمینه یه برخورد با بعضی اقلیت های دینی به صورت مستشاری کمک روشان کنه بسید. مشکل؟ با اینو رو یکی قبول نمی کردی دیگه اینا منظورشون مسلموناست این ترامپینا میخوان کلن مسلمونا رو میخوان گازنبوری قیچی کنن ها الو یس یس الو ها باریو ها باریو و yes, yes. بخشید دیگه الان وقت ملاقات هم شده با برادر ترامپ من دیگه نمیتونم در خدمت شما باشم عجب آدم یا بله. به ترامپ مشاوره بدی اینا بعدا همون بلایی که تو ایران سر بهایی هم یارن. اونجا سر مسلمون هم یارن okay, اجازه نمی... بدید من در حال ملاقات هستم بله, yes, yes, بله. یس شما گودبای عرض میکنم سی زود دیگه بله بله بله پسی مترجم خودت بایدی باش که چون به نظر انگلیسید که خیلی داغو میاد بله تسلط خاصی بنده به های خارجی دارم مشکلی نیست من خداحافظی خلی. میکنم آه. باری سوری I am intelligent service of Iran اواریو علی واش یس یس ایما بعید میدونم این ای بی سی هم بلد باشم با که میگه ترامپ خدا به جان جفتشون برس بوک تشاکلاته با جشو اوک شبی دیدت برنامه دیگهت و مشکلی دیدت خدا به سلام فرشی جون خسته نباشی علی هم از دوبه میگم فرشی جان دقت کردی مدرنیستم تو برقراری رابطه برای شب بخیر تاثیر گذاشته راستش ما قبلا ها میگفتیم بیا بریم خاله بازی بیا بریم چه میدونم دکتر بازی باله. بیا بره قایم موشک بازی کنی باله. الان کلن عوض شده من والا به همه میگم بیا بریم خونمون یه قناری دارم چونم برای روپایی میزنه با ارزان. یا بهشون میگم بیا بریم خونمون یه دونه میمون دارم برای ویالون میزنه یا باید بگیم <تصفيق> تا حياتمون یه ذرافه دارم داره سیگار می‌کشه. بیا بریم بهت نشون بدم. به خدا رو همه چی تاثیر گذاشته خسته شدیم بابا اینقدر خالی واستی. <تصفيق> <تصفيق> عزیز من شما یکم روی جذابیت‌های ظاهری و باطنی خودت کار کن. مجبور نبوش اینقدر مردم رو به هوای دیدن چیزای عجیب غریب بکچونه. من که می‌دونم اینجوری طرفم بیاد خونه شب بخیر رو بگی به شب یعنی بخ... ب... اصلاً نرسید به اونجا نرسید طرف همچی بود کیف هرچی چی دست‌دستی می‌زنه تو سر صدا قناری بدی. غلط نکنین کارو دیگه عاقبت نداره. ماقای اون دقت بفرمایید من یک مطلبی رو واقعا میخوام بگم مونده اینجام یعنی همینجوری اینجام مونده الان مدت هاست یک پدیده مدرن هم هست و اون هم پدیده آبربانک و کارت های بانکی تو ایرانه که یک پدیده مدرن دیگه شما الان نگاه نکن تو جیب هر ایرانی عداقل لیفد آبربانکه 14-15 سال پیش آم میرفی خدید مثلا به فروشنده میگفتی که میشه پول خریدم و با کارت پرداختکن فروشنده می گفت ما موی مدل کارت میشستیم کارت پول رو رد رد اما حالا با همه مدرن شدن مسائل بانکی و مالی و کارتی و اینا تو کشور ما هنوز اخلاقمون در این زمینه ها مدرن نشده که نشده که نشده یه موردش هم همه رمز همین کارت هاست آقا این رمزا تو بلاد کفر غرب وحشی رمز کارت آبر بانک شما یه چیزی در حد فوق سری یعنی شما جلوی چشم فروشندن بخوای رمزتو وارد کنید طرف اصلا روشو میکنه میره اون ور می والا به خدا من تو تو ایران تو خیلی از موارد فروشندگان عزیز احساس دکتر بودن دارن معتقدن ما مثل دکترام مثلا محرم رمز کارت شما این در دستگاه کارت خونیشونو گذاشتن یه جه دست نیافتنی اون دور دورا تنبلیشون هم میشه مثلا بردارن بیارن جلو شما مجبور میشه که رمز کارت عزیز تو به ایشون با صدای بلند فریاد بزنی تا اون واردش کنه تراکنش مالیت انجام بشه یعنی آقا با این وضع باید شاکر باشیم آمار سوء استفاده های کارتی از اینی که هست بالاتر نیستا به خدا با یارو هر کی اونجا باشه رمز بشنفه خب میاد خفتت میکنه کارت می می رو میگیره میره آبر بانک خالی میکنه دیگه والا که همونده مردم رمزشون رو بنویسن رو پیشونیشون قدم بزنن تو خیابون نکنید این کارو آقا رمز کارتتون رو ندید به هیچ احد ناسی ندین برادر من خواهر من عزیزون نکنین کارو نده من خیلی ایرونی بگم این رمز ناموس شماست حق شماست عشق شماست تو رو خدا تو صف و تو بقالی این ورمار داد نزنیدش با تشکر از شما یک تحول شگفتاور یک تغییر باور نکردنی کسی این انقلاب رسابهی ای پیشنهاده چه کسی بود اما وقتی یک پیروزی به این عظمت به دست نیا گرد دیگر افراد مهم نیستند مهم خود پیروزی است. بدین وسیله پیروزی بزرگ مدیریت صدا و سیمای کشور در تغییر لوگوی شبکه سی سیما و فنت زیرنویس های این شبکه را به پیشگاه همه مدیران ارشد نظام تبریک گفته برای باقی شبکه ها میز چون این توفیق عظیمی را آرزومندیم امید آنکه با ادامه همین افتخار آفرینی گسترده شبکه های ملحد به زودی شکست خود را اعلام و در برابر قدرت رسامه ملی سر تعظیم فرود آورند سلحاد تجلیل از تحولات و ابتکارات عظیم ملی کل کشور ی روز آقای روحانی به مناسبت 16 آذر یه توکیپا تشریف بردن دانشگاه تا پاسخگوی سوالهای دانشجویان عزیز باشن به روز دانشجو بوده دیگه سوالهایی که بعضیاش دغدغه‌مند دق دق و گلای‌آمیز بود. پایر از شما شما خبردار این از فضای سرد فرهنگی دانشگاهی که پارسال میزبان شما بود برای سخنرانیشون 16 آذر. آبگوشتی بود مثل وقتی مشاور ارشد رئیس جمهور که خود فارغ التحصیل این دانشگاه هست مزیت رقابتی صنعت کشور را در قرم سبزی و آب گوشت می و اعلام میکند امیدی هم برای دانشجوی این کشور باقی خواهد مان؟ بعضیاش دلواپسانه بود وزیر خارجه کشور حتاک را در آغوش گرفت اشتباه کردید نباید همه چیز را به سیاست خارجی گره می‌زدید و بعضیش هم کلا ناآروم بود بسم الله الرحمن الرحیم ما زنده برانیم که آرام نگیریم خلاصه رنگ به رنگ سایز به سایز دانشجو افت پشت تریبون اومد پایین و نوبت آقای روحانی که رسیدشون رفت بالا اما اول یه دو از اون چیزای و دو پهلوی مخصوص خودشو به بیت رهبری و سپاه و تشکیلات آقا انداخت که همچی شور بده به مجلس این اصلا کلا تو کار تیک کس که خوبم هم میندازه همه باید از مورد سؤال قرار بگیرند <تصفيق> البته حالا نقده برخی از غوا برخی از نهادهایی کم سخت و مشکله فعلا از دولت و رئیس جمهور شروع کنید. بله. بعد که با این تیکه مجلس حسابی گرم شد، چهخسن اومد و همچین عثمان محمودوار یه سری آمار و ارقام رو کرد که نشون میداد همه نمودارا و خطا و کلا هرچی چی سیخ کیسی درازی تو دولتش هم همه رفته بالایی، سر بالایی. همه به سمت بالا، تمام نمودارها به سمت بالا، اونم با شیبی که حچی لند کروز بوکسو باد می‌کرده. حالا راس دروغش رو ما نمیدونیم. چیکار داریم مثلا ما خلاصه از این ور روحانی میگفت از اون ور دانشجوها شوهر میدادن و فوش میدادن و تشویق میکردن و اینا هیچی چی دیگه سروتای 16 آذر امسال همینجوری سر اومد آخرش هم انقدر این دانشجوها داد زدن انقدر داد زدن انقدر شوهر دادن بند خدا صدای روحانی گرفت استقلال شما شوهر میدی صدای من گرفته <تصفيق> اینم کل داستان حضور روحانی توی 16 آذر امسال تو دانشگاه خلاصه شده چکیده کپسولی کنسروی پانچ ساده ایران در خدمت مردم اقتباس رو افتخارش بزند. سامی این چیه پانچ ساده چرا میری؟ پول گرفتی آیا ای میریم؟ این چیه این؟ با کامران گفی نوران کام. یعنی چی کامران؟ هستی کامران؟ خالو؟ گاملان. سلام سلام پس سلام،, سلام هم میگی این چی بود این چرا تبلیغ میرویم تبلیغ بانک سده شش تا بودین آره این سرود بانک صادرات رو که پخش شده به خانه دگیر معامله گل همین گلریز خودمون سرودای ارزشی میکنده زمانی آره همون این بیشب این سلود از تلویزیون پخش شده کلی سر و صداره انداخته و خبرگزارهی مختلف این سلود اعتراض کردن که چرا یه خواننده ارزشی برای که داره جهو و شهید متعریه و امام صاحب احتوال و صداش به عنوان میراسه معنوی و سب بعد باید بره برای که بانک صادرات بخونه حجب لغوت برای این که حرف صاد رو خوب تلفظ میکنه احتمالا. و چه سارنجی باشه گل ریس کارمند ربابتومی بانک صادرات اینم بگم که قرار به بدی خسائر اعتمادی هم سود بانک ایران زمین رو بخونه خوب اینجوریه به تعداد بانک‌ها خواننده‌ام داریم به همه میرسه دیگه همه می‌خونه آره هم بانک‌ها اصلا ما شرکت‌های مختلفی که میتونه سودی داشته باشن خدا رو چه دیدی یه وقتی دی چنگیز حبیبیان آره هم رو سود شرکت حفصه آل بلوگیری رو خوند یاد رسندیا رو هم سود کافش ملی رو خوند همه چی بسدی دارید آره خب دیگه چه خبر والا دیشن فیلس نامزدهای جایزه گرمی منتشر شد که تیلر سویف که کندریک لامار و ویکیند هر کدوم تو هفت رشته نامزد نامزد دریافت جایزه شدن که باید تا پونزای فبریه مندازه بمونیم پونزای <تصفح> <تصفح> فبریه خواستم بر تعداد برنامه رو زیاد کنم همینجوری گفتی... همه رو رو صحنه جایی زها آره رو بدن دیگه،, دیگه پشت صحنه ندن آره پشت سحنه و حرف حدیث بشه برات <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> این ویکند که گفتی آه. همون نیست که ترانه يه... Can't feel my face یعنی همون نمیتونم صورتم همو حس کنم خونده چرا همونه همونه بحبه من اینو خیلی دوست دارم سامی برو پس این رو بشنویم و با کامرون هم خدافزی کنیم تا هفته ی آینده شنبه تا شمبه خود I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it, oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it, oh, and I know she'll be the death of me, at least we'll both enough, and she'll always get the best of me, the worst is yet to come, all the misery was there. said we went what deep in love cause I know cause I know girl I know she told me don't worry ایک از مسائلی که باید مؤمنین و مؤمنات با آن توجه خیلی زیاد نشان بدهند اینه که مسائل دنیاوی همینطوری مدرزاد همه حرامند حالا دیگه شما خودتان ببینید مسائل مدرن دنیاوی که اصلا از خود شیطان بیرون آمدند دیگر چقدر حرامند مثلا ما مشاهده میکنیم که بعضی از مؤمنین ماشین سوار میشن که آدم میمونه. این ماشینه سفینه تیاره یه، این چیه اینه که خوب چون ما از این مسائل سر در نمیاریم دادی. پس اهفیات هند چی و بالا بله. داری میکنی بابا تو دل بند به شعور و بی تو نمیفهمی ما داریم اه. منبر میریم بدون پاپوش میپری تو حرفای ما عادی جنو واسه کی نمی منبر میبینی که کسی نیست داری صحبت میکنی که خب دو دلیل داره یک اینکه ما برای منبرهای قدیمی مدل مونتاین شدم گفتم یک تجدید خاطره مقابل و دیگه اینکه یک روحانی مثل یک فوتبالیست همیشه باید آماده باشد بالا دردی آقی اونا فوتبالیستن عله. باید بدنشون آماده باشه شما که تو زمین بازی نمی که بابا زبان مبارک باید همیشه آماده باشه دیگه. زبان روحانیت مثل پای یک فوتبالیسته باید آماده باشه تا ایک خدای نکرده از فرم خارج نشه بابا باشه دادی من توجیه شدم خب پس مرا بذار ما ادامه تو... اه... بدیم تمرینات. نه آقی حالا همویلن من بر در حالت لمیده روی بود دا اشانتر... راست داشتیم. حالا میخوایم. با سمت چپ ادامه بدیم دیگه خیال بابا ددی من کارت دارم کارداری کارداری با ما آره دل بند دادی دادی ددی من از بله. سردار نمایش گاز یه دونه مازراتی خریدم ولی 20 میلیون کم بله. آوردم اومدم قرض بگیرم از ددی یا مقام معظم رهبری چی خریدیم مازارلا نه باب ددی با... مازارلا که پنیره بابا مازراتی ماشینه ددی مگه این قیمتش چقدر هست که شما؟ کما ورده بازین شورش هست که در خلق عالم است ای قیمتش این قیمتش بالاست دیگه ددی مازراتیه بابا این بار بله. جدیدم که از سومات را بیاد زود پولش میکنم میدم پول تو ددی باشه قرض بده سر عزیز دلبند خاک بر سرم ما که پول نداریم دادی؟ همین نگه یک مایم و یک عبایی که آتش توان زد نگه دادی این فیلم رو ما... واسه من بازی نکن بله. بابا پول میدی و برم بیت از همون بگیرم ببند آنت را ها؟ دل بند بیتر بیت برای مزارلا که مزاحم احل بیت رحبری نبایست بشی ایشان این روزها مشغول من... برانداختن این علوم ظلله نه سونیه من وقت م... این کارها رو نداره دادی من پول با... می‌خوام دادی من پول با... می‌خوام دادی دادی من پول می‌خوام دادی پول می‌خوام پول با, با چی هست حالا این موزارلا بگو ببینم برای من دادی ببین آخر ماشین‌ها اصن باذ صحبت می‌کنه بیا ببین این عکسش رو ببین ایسا... کو اینا دیگه کاری نداره بله و ببین اینها ها... من کامل چرا رفته روی صفحه این ماشین این دویست میلیون که با... گفتی اینم روشه بابا دادی این مدل بابا این برای تبلیغ مدل. ماشین رفته روشه مدلش چند هست حالا دو هزار با... ددی دیگه یک امکاناتی داره ددی اصلا نمیدونی نه, نه نه نه این مودله روی ماشین رو میگویم این قیمتش چنده این دادی آه بابا این که فروشی نیست اینات مانکنن فقط برای تبلیغات عکس گرفته عجب چه کرده دادیا با سردار هشمتیان باید صحبت بکنیم ببینیم کل مزارلا کلیلن این رو چند میدن کل مزارلا رو بخریم اینا هم شاملش میشه دیگه دادی الکی دا بب... ببین سنگ بزرگ بر نداره دیگه دادی فیلن این دیویست میلیون بده من این مازراتیه رو بردارم به خدا حیفه ها پسر سردار کازمی هم زون بله کرده بله. رو همین که چشمه منو گرفته آه. میخواد بخرتش تو فردا نخرم میخره ها بله. ددی ددی ددی ددی ددی مزار الله ای. ای. پسر رو برایم روی تلگرام بفرست در موردش فکر میکنه ددی سر کار بفرست. نذاریه خب نه بفرست بیاد دیگون باشه باشه بارک الله بایست ددی بیا بله. اینم ازه بیه سنت کردم برات دیگه کرده. سنت کردم آن آن آمد آمد. امد باشه امت برو برو دیگه برو اینجورا خاله خوندیگه بگذار من در تمرکز بکنیم برو دیگه یعنی کار داری دادی امیدوار برو. باشم دیگه هری آره. تو برو هر چیزی که میخوای باش برو فخر باشه باشه الله ما با را این بته برو برو اون در رو هم به من باشه, باشه دادی فقط دادی یه ساعت دیگه میام چکیش ولی من نمیساز که اسکاتو اینجا گفتم برو دیگه آره. ای دل بنده نه؟ خجالت بکش گفتم برا بیرون دیگه خجالت نمکشه برا پسر این جایش در آلبوم سیغه مخالیه بله بیا پایین، عزیز من بیا پایین. چرا رفتی اون بالا؟ نیفتی از اون بالا خدای نکرده بیا پایین، بیا بیا, بیا اصلا بیست روی سر ما چرا رفتی اون بالا؟ تفضل بالا بالا بالا دختر نرو بالا بیا بیا سو بالا بالا بالا بالا تن اسمو پهات تو تن اسمو پدا تو تن شیرینی الهی تو نابینی بو سینه ی نرسون بو موی پری و احبه خانم آقای مدرنیسم کلن امروز زندگی ها راحت کرده این سفر کردن رو که اول برنامه گفتم فقط یه موردش بود راجب سفر گفتم مثلا قدیم میخواستی صبونه بخوری یه نفر باید چهار صبح بلند میشه و تنور روشن میکرد خمیر ورز میداد پن میکرد میچست بود تو تنور که چی بشه سر صبح بتونی یه نون پنیری بخوری بعد برای یه لیوان شیر بعد میره تو قویله آقا بوذر بیدار می‌کردی چهار میذاشتی می‌ذاشتی شیره رو قطره قطره میدوشیدی آقا بوظم ولای سرحال نبود چه بعد آخرش عرق کار دوشیدن رو تموم می‌کردی مثلا چه میدونم دیگه یه کاری هم وسط ظرف شیرت می‌کرد دیگه شیرت میشد شیر کاکائو الان صبح در یخچال وا میکنی خیلی شیک یه شیشه 1 شیر شیر تو یخچال نام کم چرب بپر چرب خب اینا همه از ثمرات مدرنیسم دیگه علو گفتم یخچال اینا هم بگم قدیم برای مثلا برای یه که یخ می‌خواستن بندازن تو لیوانشون جیگرشون حال بیاد بعد می‌رفتن نوک کو از این های طبیعی یخ قالبی انزه هیکلشون می‌کندن تا می‌رسیدن پایین یخش شده بود انزه حب قند خب همون می‌انداختن تو لیوان مثلا یخ بهش میخوردن صفا کردن الان میری جلو یخچال دکمه رو میزنی می‌گه انتخاب کن یخ قالبی میخوای یا پودری بعد می‌گی مثلا قالبی باز آپشن بهت میده که قالبش دروش باشه یا ریز فکر کن زمان قدیم مثلا کروش کبیر و اسکندر مقدونی هم چند انتخابای برای یه خوردن نداشتن الان تو خونه هر کارمندی پیدا میشه اینا همه اثارات مدرنیست میدید پیش ابرار به نقل از حسن روحانی امروز تیتر زده بود که هیچ کس نباید خود را از سوال مستثنا بداند. بله ولی بعضی از ظاهرا حق دارن خودشون از جواب دادن مستصنا بدونن. حالا حالا اجازه بدین اس نبریم ما دیگه. ولی خب. روزنامه ابرار اقتصادی امروز تیتر زده بود که نفت ایران وارد کانال سی دلاری شد. همش سی دلار؟ ولی دیگه این اسمش کانال نیست که راستاً جو به آبه. و روزنامه قانون با اشاره به وعده شرکت سردار سلیمانی در مراسم 16 آذر دانشگاه بهشتی و عدم حضور وی امروز تیت زده بود که جذب دانشجو با نام سردار <تصفيق> خوبه حالا همچین میگن جذب دانشجو با نام سردار انگاه اون سردار جنیفر لوپزی یا الکسیز تکزازی چیزی بوده والا خاطره ها مثل ویروسن مصری و بیرحم مریضت میکنن اگه توشون غرق بشی زندت میکنن اگه به موقع و خوب به یادت بیان خاطره های خوش خاطره های بد خاطره های تلخ خاطره های سمج خاطره هایی که میچرخند تو وجودت و گاه به گاه که سرریز میشن اشک میارن لبخند میارن نفس میارن نفس میگیرن شاید خاطره ها اصلا ثروت ما هستن حتی حتی اون خاطره هایی که روی دیوار آجری تهیه کوچه بمبست نرش بستن شبتون خوش خاطره هاتون در پرواز یه دیوار آجری تَه این کوچه بن کم شده دیگه طاقتش آخه فرسوده و خسته پر از خاطره خاط خاطی های قدیمی یه دنیا حرف از خوشی از دوری و آسی